بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج كتاب حج حج در لغة دماني قصد وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء شرط هاي واجب شدن حج هفت چيز مي باشند برا حج بر كسي واجب بشي ان هفت شرط نياز هست. يك الاسلام مسلمان باش دو والبلوغ بالغ باشي س والعقل آقل باشه، عقل داشته باشه، دیوانه نباشه چهار و آزاده باشه، برده نباشه پنج و وجود الزادی زادی و موجود بودن توشه سفره برای حج و سواری بله توشه رفت و برگشت حج و اونجا موندنش رو داشته باشه و همچنین سواری رو داشته باشه شش و تخلیه و طریقی و خالی بودن طریق از موزیات یعنی طریق امن باشه موزیاتی نباشه هم خودش و هم حیوان محترمی که داره خلاصه هم برای مالی که داره راه امن باشه و امکان المسیر و امکان مسیر یعنی بعد از اینکه اون زادش و راهله و شو امنیت طریق و همه چیز فراهم شدن به قدری وقت داشته باشه که طبق معمولی بره برای عدای مناسک اون قدر وقت باقی مانده باشه، كي با سرعة عادي وبشكل عادي ومأمولي بتونا برس براي عداي حجش وأركان الحج أربعتون أركان حج شارتا من باشا الإحرام مع النية يك الإحرام مع النية إحرام هم راهب النية. دو والوقوف بعرفة ما اندن در عرفة بعد از زوال خورشید روز نهم تا فجر روز بعدی سه و طواف به بلبیت تواف بیت تواف بیت. بیت هم طواف افاضه جزوه ارکان حجه چهارمین چیزی که جز ارکان هست و چهار از سعی, و بین, سعی بین صفا و المروه سایه بین صفا و مروه هست بله تواف هفت دور دور بره بیت میچرخه و در سعی بین صفا و مروه از صفا شروع میکنه میره مروه این یک دور از مروه میاد تا صفا دو دور دوباره میره سه دور هفت دور بله پس اینا چهار تا رکن از ارکان حج میباشند باشند. با بانیت وقوف در عرفه توافه افازه من دور زدن های هفتگانه رو بیتو میگن و رفتن بر کوه صفا و مروه اینا شدن چهار تا رکن از ارکان حج و ارکان لعمرتی ثلاثه اما عمره ستا رکن داره یکی احرام دیگری تواف سومی هم سعی هست خب اینجا البته یه چیزی موند. ارکان حج آورده بود 4، در حالی که 5 تا هستن و ارکان عمره آورده که 3 تا هستن در حالی که چار تا هستن یعنی شروع اینو میارن انتهای اینو اینا آورده من هم حواسم نبود پس ارکان حجو ایشون نوشته چار تا ولی پنج تا ان نوشته که شرحش هست احرام وقوف در عرفه یعنی ماندن در مکان عرفه تواف کردن به تمون تواف افاظهش سای بین صفا و مروه هفت بین صفا و مروه پنج حلق انتراشیدن موها او تقصیر یا کوتاه کردنشون <تصفح> ارکان عمره هم که نوشته سی تا چارتا میبشند یک احرام دو طواف سه سعی بین صفا و مروه چهار حلق انتراشیدن موها او تقصیر فی احد القولین یا کوتاه کردنش طبق از دو قول بس اکثریت میگن که حلق است یا تقصیر باره و البته این مسائل اکثرشون حد اقل باید با ترتیب باشن اکثر ارکان باید با ترتیب باشن پس ترتیب ارکان در حج و عمره هم است. و واجبات الحج غیر الارکانی ثلاثت و واجبات حج سه چیز می ارکان نا واجبات یک احرام الاحرام من المیقات احرام و از میقات بکنیم ما میقات زمانی داریم و میقات مکانی میقات زمانی حج شوال و ذوالقعده و ده شب حجه هستند قبل از اینا نمیتونه احرام ببنده برای حج الله زمانی اما میقات های مکانیش 5 تا یعنی انسان بون 5 تا مکان که رسید باید نیت ورود در حجو بگیره احرام ببنده و مسائل که مربوط به اون حسن رو رعایت بکنه پس این میقات های مکانی چه هستن؟ یکی اثمش زلحلیفه هست این برای مردم مدینه هست یعنی از اونجا میرن جحفه برای اهل شام و مصر و مغرب هست یلملم برای یمنیها ها قرن, قرن برای اونایی که از نجد میان ذات عرق برای اهل عراق هست الحمدلله پس احرام و اسمون میقات مکانیش ببنده از هر کدوم مسیری که رد شد و رمی الجمعر الثلاث رمی ستونهای سگانه اون تا ستونی که اونجا هستن اونا رو با سنگ میزنن اونا رو زدنشون از واجبات هست و حلق اینجا حلق آورد که جزو واجبات هست و اون نهای آورده بود که در ارکانش آورده بود صاحب نهایی میگه که این, این که حلق و جزو واجبات بدونیم قول است خب یکی از شارهین ابی شجاست و سنان الحج سبعون سنت های حج هفته می باشد. البته در شروعی که من نگاه کردم میگن سنت های حج بیشتر از این هستند خب کتب دیگه ذکر کردن اونها رو اما طبق کتاب خودمون الافراد ما میدونیم که انجام حج و عمر با هم به سه شکل انجام میکرند حج و عمره اول افراد افراد همینه که شخص احرام ببنده برای حج در ماهاش از میقات اون منطقه که داره و بعد از فارغ شدن از اعمال حج همهشون بعد از تمام اعمال حج بیادو برای عمره احرام ببنده اینو میگند افراد یعنی اول حجو انجام بده بعدن عمره رو. برعکسش تمتع اینه که ابتدا برای عمره در ماهای حج احرام ببنده از میقاتی که ازش رد میشه سپس بعد از اینکه فارغ شد از اعمال عمره میاد و احرام میبنده برای حج از مکه یا خلاصه هر جای دیگه چو جای دیگه این رو هم در فقیق میاره سه قران قران یونی که احرامون ببنده برای حج و عمر با هم از مقات حج پس افضل این ستا افراد هست اینجا که گفته سنت های حج هفته می اولی افراد. اولی اینه که حجشو به شکر افراد انجام بشه یعنی اول یعنی حج بر عمره تق... تقدیم بکنه و هو تقدیم الحج علی العمره تقدیم کردن حج بر عمره کمون اسمش افراده این سنت هست بر قران و بر اه... تمتو افضلیت داره تمتو بر عکس افراده دو تلبیه لبک الله بک لبک لا شریک لبک لبک إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبية جو الصنة هست. سوى توافق القدوم. توافق قدوم صنة هست. حاجيك قبل زوقوف ورد مكة مشه. خميري ونجا طواف انجام بديه. المبيت بمصدل فا ماندن شب, شب, شب رو رد کردن شب رو سپری کردن در مزلفه و رکعتا التواف در رکعت تواف و المبیتو به شب, شب مندن در منا در شب شبهای سگانهی که اونجا کنه. میکنه شباش در منا به موندنش سنت اس طواف الوداع وتوافي وداع خب البته اينايي که اينجا گفت اختلافي يعني تواف ودا ما بيت بمناء دركه تواف ما بيت در مزدلفه ميگه اين كتاب من ميگه اصح المعتمد ان الاربعه الاخيره واجبات انشارطه واجب حصلت چون بعضی فقه های شوافه ها وردن جز سنت و بعضی جزوه واجبات ایشون اونی که صحیح تر است و معتمد است این تا اخیر واجبا خب و یه تجرد رجل اندال احرام من المخ من المخیط و یه ازارا و رداءا ابی ازاینی شخص زمانی که احرام بست نیت ورود حج کرد وارد شد در احرام از لباس های شده خودشو مجرد کنه یعنی اونا رو بکشه بیرون و ازار و ردای سفید بپوشه چون اونا دیگه دوخته شده ندارد فصلون ما یحرمو الحاج فعله اون کارایی که حرام هستند بر حاجی. ما یحرمو علی الحاجی فیلو اون کارایی که انجامش برای حاجی حرام هست و یحرمو علی المحرمی اشرت و ده چیز بر حاجی یا بر محرم اونی که در احرامه بهتره بگیم چون شامل هر دو احرام میشه پس حرام هست بر محرم ده چیز یک لبس المخیطی پوشیدن لباسایی که درشون دوختگی است لباس پوشیدن آنچه که درشون دوختگی باشد دو تغطیر رأس... رأس من الرجل پوشوندن سر مرد و الوجه و من المرأة و پوشیدن صورت و دو کف دست زن پس یک پوشیدن دوخت... چیزی که درش دوختن دو پوشیدن سر مرد و صورت و کف دست از زن سه ترجیل و شعر شانه زدن شعر در پاوریغی گفته اولا این یقول اولا این بود که میگفت روغن زدن مو خوب چهار و حلقه تراشیدن مو پنج و تقلیم و الافر کردن ناخون و زدن خشبوی هفت و قتل صید کشتن صید هشت و عقد نکاحی عقد کردن نکاح عقد نکاح دکر اونجا عقد ببندن برای نکاح هشت و الوطع. خب وطق نزدیکی کردن و آمیزش داشتن ده و المباشرت به مباشره به شحوه، بله، این بغیر از فرج هست، چون وقت او آورد قبلش، مانند لمس کردن و بوسیدن و امدی و وفي ذلك این چیزها. و فی جمعی ذالک الفیدیتو ایل اقدا نکاه، اگر این کارا رو انجام داد، در تمام اینا فیدیه لازم میشه، هر از این کارای، حرامی رو که اینجا نام برد فدیه لازم میشه الا عقد النكاح جز عقد النكاح که اگر عقد کرد دیگه نیاز نیست فانه لا ينعقد میگه چون بصه نمیشه بصه نمیشه این عقد منعقد نمیشه ولا يفسده الا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد میگه و احرام و فاسد نمیکنه جز وطع در شرمگاه ولا لا یخرج منه بالفساد و بعد از این فاسد هم شد احرامش دیگه میگه خارج نمیشه از احرام خاطر فاسد شدنش بلکه ادامه میده و بعدا قضاییش هم انجام میده و من فاته الوقوف بعرفه تحلل بعمل امرت وعليه القضاء والهدي هر كسي كفوت شد از او وقوف در عرفات شل وقوف دار عرفات, عرفات از اركان هز كسي انجا مش نده كحاجي نداري تحلل بعمل عمرتين بعمل عمره از احرام بيرون مياد وعليه القضاء والهدي وبرش قزايا حاج ناقل نياز و وكشتن حاجي ومن ترک رکنن لم يحل من احرامه حتی یعطیمه و هرکس رکنی رو ترک کرد از احرامش در نمیاد تا اینکه اون رکنه رو باید انجام بده و ومن ترک واجبا لازمه دم هرکس واجبی رو ترک کرد بر او خون لازم میشه که جلوتر توضیح میده این خونچیه و من ترک سنتا لن یلزمه هو به اما هرکس سنتی سنت های حجو ترک کرد با ترک سنت چیزی بر او لازم نمیشه